فقه 511 سرانجام حتی ها نفر را نزد قاضی بردن تا به کار آنها رسیدگی کند همین که به نزد قاضی رسیدند راستن بدون معطلی گفت حضرت قاضی شما نماینده خلیفه هستید ما هر ها نفر مرتکب جنایتی شده ایم و همه با هم سوگند خورده ایم تا وقتی که بر اثر چوب خوردن مجبور نشده ایم از اقرار به جنایت خودداری کنیم و اول همه را چوب بزنید قاضی هم بدون معطلی راهزن را به فلک بست و مرد راهزن پس از تحمل بیست سی زرب چوب در حالی که یک چشم خود را باز کرده بود به قاضی گفت بس است. قاضی که دید یک چشم او باز است فریاد کشید این چه مسخره بازی است که خود را به نابینایی زده ای؟ راهزن گفت اگر قول بدهی که دیگر مرا چوب نمیزنی و انگوشتر نقره ای را که در انگشت خود داری به عنوان نگه داشتن قول خود به من بدهی من هم روز بزرگی را فاش می سازم قاضی بلافاصله انگشتر خود را در به راهزن تسلیم کرد راهزن هم گفت ما هر چهار نفر گدا هستیم و خود را به نابینایی زده ایم که مردم به ما کمک کنند و همچنین از ضعف اخلاقی زنان سست اون هم استفاده کنیم و از این راه توانسته ایم ده هزار درهم به چنگ آوریم و چون من سهم خود را که دو هزار و درهم از مطالبه کردم مرا کتک زدند و من هم مردم را به یاری طلبیدم و اگر شما به هر کدام از آنها سه برابر ضربه هایی که به من نواختید آنها را توب بزنید حقیقت را خواهند گفت و چرج را هم مانند من باز خواهند کرد قاضی با شنیدن سخنان راهزن به خشم آمد و فریاد کشید شما حق بازها خود را به نابینایی زدید تا از پول و ناموس مردم سو استفاده کنید برادرم خواست صحبت کند بازی مجان نداد بازی به هر کدام از آن سه نفر دویست زرب چوب زد و هنگام زدن دقت می کرد تا ببیند آنها چشم خود را باز می کنند یا خیر. در همین اوقات راهزن هم به آنها می گفت احمق ها تان را باز کنید وگرنه آنقدر به شما چوب می زنند که جان خود را از دست می دهید بعد راهزن را به قاضی کرد و گفت دستور به فرمایی پول را از خانه این دو که به او اعتماد کرده بیاورند و را پرداخت فرمایند.» قاضی هم به همین ترتیب رفتار کرد و مامورین او به اتفاق راهزن به خانه بکپک بک رفتند و در ی هزار درهمی را آوردند و قاضی هم دو هزارو پانصد درهم از آن پولها را به داد و بقیه را نزد خودش نگه داشت آنگاه بکبک بک و دو دیگر را محکوم به خارج شدن از شهر و اقامت در یک شهر دیگر کرد من به دنبال بکپک بک رفتم و او را مخفیانه برگرداندم و سپس به نزد قاضی رفتم و داستان راهزن را برایش تعریف کردم. واسه. قاضی هم راهزن را به مجازات قانونی رسانید اما دیگر جرأت نکردم پولها را از او پس بگیرم. این بود داستان سومین برادرم. داستان چهارمین برادر مرد سلمانی. چهارمین برادر من که نامش بربرک به کار قصابی مشغور بود و به خاطر آنکه گوسفندان نر را برای جنگینان با یکدیگر تربیت میکرد شهرت بسیار پیدا کرده بود به طوری که عیان بزرگان شهر همه با او آشنا بودند و هرکدام کدام از آنها تداری گوشتند نب نگهداری می‌کردند از سوی دیگر مردم هم به گوشت فروشی او می آمدند و به سرین گوشت ها را رو می‌خریدند روی هم رفته درآمد خوبی از این راه به دست آورده بود در یکی از روزها پیرمردی باریش بلند به دکان او میآید و دو من گوشت از او می‌خرد و که به برادرم می‌دهد درخشندگی و شفافیت بسیار داشته و برادر من این سکه ها را جداگانه نگهداری می کند. مدت پنج که 5 ماه هر روز این پیرمرد مقدار دو من گوشت می خریده و از همان سکه ها می پرداخت. در یکی از این روزها بربرک سجادی گوشت خریداری می کند و وقتی می خواهد بهای آنها را بپردازد، قوطی مخصوصی که این سکه ها را در آن پسنداض کرده بود می گشاید و به جای سکه مقداری برگ در قوطی می‌بیند، ناراحت می‌شود و می‌گوید این پیرمرد حق باز تقلب کرده و به جای سکه چشمندی کرده و مقداری برگ به من داده است. در واقع پیرمرد جادوگر کوهنکاری بوده که بدون ترتیب رفتار می‌کرده است. بربرک فریاد میکرد و می‌گوید ای مسلمانان به دادم برسید و مردم هم دور او جمع می‌شوند. در همین هنگام پیرمرد نمایان می‌شود. بربرک میگوید آن مردم پیر مرد متقلب همین مرد اشت مردم داره او را میگیرند پیرمرد به آرامی به برادرم میگوید تو آبروی مرا نزد مردم میبری ولی من از هیچکس باکی ندارم و اگر به همین ترتیب ادامه دهی کاری میکنم که از کردهٔ خود پشیمان شوی بربرک همچنان فریاد می کرد تا آنکه پیرمرد میگوید این مرد گوشت انسان به جای گوشت گوسفند مردم میفروشد و الان هم یک نفر را کشته. و او را در دکان قصابی خود به قلاب آویزان کرده است. مردم به دکان قصابی حجوم می آورند و در را می شکنند و این پیرمرگ با جادوگری و چشمندی ترتیبی می دهد که گوسفند آویخته به دیوار قصابی را انسانی می بینند. با دیدن این منظره مردم بربرک را کتک می و پیرمرگ مشتی محکم به صورت بربرک می زند. کیه یک چشم او بیرون میافتد و مردم بربرک را نزد قاضی میبرند و واقعه را بازگو میکنند قاضی حرفهای بربرک را باور نمیکند و حکم میدهد سه روز بربرک را روی شطور دور شهر بگردانند و بعد از آن او را از این شهر بیرون کنند برادر من مدتی دور از بغداد میگذراند و چون از آن شهر خسته میشود به هومهٔ شهر می رود در حال گردش صدای سم چندین اسب او را متوجه میسازد که چندین از سوار به سوی او میآیند، او از فرس آنها در خانه ای را می‌گشاید و داخل می شود در این هنگام خدمتکاران خانه بر سر او میریزند و فریاد می‌کنند که ای دزد خائن، بالاخره تو را به چنگ آوردیم. دیشب هم می‌خواستی ارباب ما را بکشی، وقتی او را با بدنی می‌کنند، چاقوی در جیب او پیدا می‌کنند. او را کتفسته نزد قاضی می‌برند و می‌گویند اموال ارباب ما را دزدیده و حالا هم با شاقو وارد خانه شده قاضی هم او را به یک ست ضرب تازیانه محکوم می کند بعد از اجرای حکم او را وارونه روی شطر سوار می کنند و دور شهر می گردانند که عبرت سایرین شود بعد از آن بربرک را از شهر بیرون میکنند. کنند بعد از احادی شهر به من خبر دادند که بربرک برای بار دوم مجازات شده است من هم به همون شهر رفتم و او را به طور پنهانی به شهر بغداد آوردم. انگاه به خدیفه عرض کردم ای سرور بزرگوار ملاحظه می‌فرمایید که من زیاد سخن نمی‌گویم ولی چون حضرت سلطان سخنان من را توجه می‌فرمایند اجازه دهید سرگذشت دو برادر دیگرم را هم به عرض برسانم خدیفه هم موافقت کرد سرگذشت پنجمین برادر پنجمین برادرم نامش نصر بود جوان تنبل و تنپروری بود بعد از مرگ پدر 700 درهم از او باقی ماند که به هر کدام 100 درهم رسید. نسکار با 100 درهم خودش مقدار شیشه و بطری خرید و آنها را در یک زنبیل روبازی گذاشت و در یک دکان کوچک نشست و در انتظار مشتری بود. در عین حال با صدای بلند به طوری که خیاطی که همسایه او بشنود میگفت تمام شیشه‌های این سبد را 100 درهم خریدم که تمام دارایی من از مال دنیاست. آنها را به دیویز درهم خواهم فروخت و با این پول دوباره شیشه خواهم خرید و چهارصد درهم آن را می فروشم و به همین ترتیب تا آن را به چهار هزار درهم افزایش دهم و بعد آن را به شش هزار درهم و سپس وقتی به ده هزار درهم رسید آن را به جواهر فروشی تبدیل می کنم و بعدا که ثروت کافی به دست آوردم خانه بزرگ و کنیزان بسیار و چندین اسب و خدمتکار تهیه صحیح و آدم سرشناسی می شوم. و سروت کجا افزون می کنم تا به اندازه یه یک امیر و شاهزاده شود و با دختر وزیر ارزم ازدواج می کنم و شب اول یک هزار سکه یه به او می دهم و اگر هم وزیر موافق نباشد به زور با دختر او ازدواج خواهم کرد و زندگی اشرافی برایش اشتهیه می کنم و خودم مانند شاهزادگان سوار بر از می روم و در شهر گردش می کنم و به کاخ وزیر می روم. و از میان صف خدمتکاران به عنوان داماد وزیر عبور میکنم و مردم همگی به من احترام میگذارند. دتا از خدمتکارانم هر کدام کیسه ای از طلاحوی یک هزار سکه همراه من میآورند که یک کیسه را به وزیر می دهم. چون گفته شب اول عروسی هزار سکه طلا می دهم تا ثابت کنم به قول خود وفادارم. و آن یک هزار سکهی طلا را هم باز به وزیر می دهم تا بداند که چقدر من سخاوتمندم. بعد از آن با همان تشریفات به خانه خود برمیگردم و حدیه هم به همسر خود می دهم و لباس های گرام به هم می وقتی با همسرم در خانه تنها هستم من در قسمت بالای اتاق می‌نشینم و کمتر سخن خواهم گفت و او را وا خواهم داشت تا در برابر من به و بگوید سرور بر من کنیز شما در خدمت شماست آن وقت وانمود خواهم کرد که چیزی نشنیدم و به هیچ سمت هم نگاه نخواهم کرد. این حالت را آنقدر ادامه خواهم داد تا آنکه از ایستادن خسته شود. آن وقت به او خواهم گفت بنشین و هنگامی که با من به گفته او بنشیند پاسخی به او دهم تا چندین بار از من درخواست پاسخ کند. آن وقت با سخنی کوتاه پاسخ او را خواهم داد. این حرکت را چندین بار تکرار خواهم کرد و به سخنان همسرم پاسخ نخواهم داد تا با التماس و خواهش از من بخواهد که به حرف‌های او توجه کنم و من در روز اول زناشویی این رفتار را نسبت به همسرم خواهم کرد تا از آن روز به بعد به آن ترتیب عادت کند و بفهمد که باید فرماندار من باشد و شوهر را سرور و ارباب خود بداند روز بعد از عروسی وزیر و مادر زنم به دیدن من خواهند آمد و همسرم بی‌اخنانی مرا به آنها خواهد گفت و سپس وزیر با فروتنی از من خواهد پرسید علت بیمهری شما به دخترم چیست آیا در نجابتش تردید دارید آنگاه مادر زنم به دخترش جام شرابی میدهد و میگوید این را به شوهرت بده وقتی همسرم جام را نزد من میآورد باز به بیاعتنایی خود ادامه میدهم و همسرم انتماس کنان از من میخواهد که جام شراب را از او بگیرم در این رحظه نگاهی تندی به او میکنم و با دست خود سیلی به صورتش خواهم نواخت و لگری هم به او خواهم زد در این هنگام نسکر که تصور می کرده، همسرش در مقابل او ایستاده لگدی که می زند محکم به زمیل شیشه برخورد می کند و تمام شیشه و بطری های او می شکنند و در خیابان پراکنده می شود. مرد خیاطی که همسایه او بوده و سخنان و حرکات نسکر را زیر نظر داشته وقتی می بیند بی اختیار بالگت زدن به زمیل شیشه هایش همه دارایی خود را تباه ساخته خنده اش می گیرد. نسکر که تازه از صدای شدن شیشه ها به خود آمده بود، فریادش بلند می شود و گریه می کند، بر سر روی خود می کوبد و می گوید عجب خاکی بر سر خودم ریختم، ای مردم به فریادم برسید. مردم دور او جمع می شود و بانوی محترمی که از آن ناحیه می از وضع او جویا می شود و بعد از آگاه شدن از وضع او به قلام خود که همراهش بوده دستور می دهد پانصد درهم به او بپردازد. نصاب پول را میگیرد و یک دنیا سپاس می میکند و به سوی خانه می رود. در خانه نشسته بوده که کسی در را به صدا در میآورد. وقتی در را میگشاید، پیرزنی را میبیند که میخواهد برای گذاردن نماز ظهر به خانه او بیاید. او هم پیرزن را به داخل خانه میآورد و وی بعد از پایان نماز وقتی میخواهد خداحافظی کند، برادرم چند سکه به او پول می دهد. آن پیرزن سکه ها را نمیگیرد و میگوید من در خدمت بانوی جوان و زیبایی هستم که همهگونه به من توجه دارد و نیازی به پول شما ندارم این بانو میخواهد شوهر کند و اگر مرد خوبی پیدا کند او را به همسری میپذیرد برادرم که جوان ساده لوحی بوده حرف او را باور میکند و میگوید من میخواهم بانوی تو را ببینم زیرا در فکر ازدواج هستم و همراه پیرزن راه میافتاد بعد از مدتی راه رفتن به ای می رسند و ابتدا پیرزن داخل می شود و بعد هم برادر من. به محض ورود به اتاق بانوی جوان و بسیار زیبایی وارد اتاق می شود و خوش آمد می گوید و بانوی زیبا برادرم را به اتاق خلوت میبرد و مدتی نزد او باوی مهمانی خوشرفتانی می کند و می گوید از آشنایی با تو خشنودم. آنگاه بانوی زیبا از اتاق بیرون می رود. و بعد از چند لحظه مرد قوی حیکل سیاهپوستی با ساتور وارد می شود و می گوید برای چه منظوری به اینجا آمده برادرم از شدت ترس قدرت سخنگفتم را از دست می و روی زمین بی حال می افتد. مرد سیاهپوست برادرم را لخت می کند و سکه های او و هایش را هم می و با ساتور خود چند جای بدن او را هم زخمی می کند برادرم کف اتاق افتاده بود که بعد از مدتی. همان پیرزن وارد اتاق می شود و به تصور اینکه او مرده از پاهایش را گرفته و او را کشن کشان از دریچه یک کف اتاق سرازیر کرده و روی اجزادی دیگر که در زیر پنجره بوده اند می اندازد. مرادرم که حواستش کار می کرده متوجه موقعیت خود می گردد و دو روز در آنجا می ماند و بعدن هنگام شب به طور مخفیانه از آن محل خارج می شود و با حالت ضعف و رنجوری به من پناه می آورد. مدقی یک ماه از برادرم پرستاری و مراقبت کردم تا کاملا به خودی یافت و تصمیم گرفتم انتقام خود را از آن پیرزن که او را به دام انداخته بود بگیرد در یکی از روزها کیسه ای که در درهم تلا در آن جای می گرفت به دور کمر خود بست و آن را به خورد شیشه انباشته کرده و خود را به صورت پیرمردی مبدل ساخت و در خیابان به گردش پرداخت و ساتوری هم زیر لباس خود پنهان کرده بود اتفاقاً برادرم همان پیرزن را که دنبال شکار تازه میگشت میبیند و جلو می رود. خود را رو از اهالی کشور ایران معرفی می کند که مقداری سکهه طلا دارد و میخواهد آنها را وزن می کند و دنبال ترازو می گردد. پیرزن گوید دنبال من بیا تا تو را راهنمایی کنم. برادرم دنبال او راه میافتد تا به خانه او میرسند در خانه را همان سیاه پوست قوهه کل باز می کند و آنها داخل خانه میشون. سیاه برادرم را راهنمایی می کند که به اتاق محله ترازو برود همانطور که سیاه پیشاپیش پیش در حرکت بوده برادرم با ساتور خود ضربه سنگینی از پشت سر برگردن او وارد می سازد که سر را از پیکرش جدا می سازد و در همان لحظه پیرزن را هم به همان سرنوشت گرفتار می سازد سپس جنازه هر دو را از همان دریچه به پایین رها می کند برادرم به اتاقی که آن بانوی جوان زیبا را قبلن دیده بود می و او را متهم به همکاری با پیرزن و سیاه پست قویه می کند بانوی زیبا به گریه می پردازد و به او می گوید من بی گناهم. من هم سر بازرگان سرشناس شهر بودم روزی همین پیرزن که گاه و بیگاه به خانه من می آمد، نزد من آمد و گفت در خانه او جشن است و مرا دعوت کرد من هم بهترین لباس هایم را پوشیدم. و یک س سکه طلا هم همراه خود بردم و به خانه او رفتم. در آنجا همان سیاهپوست قویه کل مرا زندانی کرد و مدت و سه سال است که در این خانه مرا نگه داشتند. هر روز مردی را به اینجا می آورند و من به حکم سیاهپوست با مرد تازه وارد سلامات می کنم و ازتا خارج میشونم بعد او را میکشند و پولهایش را تصاحب می کنند. برادرم گفت با این ترتیب باید تا قانون ثروت بسیاری انخته شده باشد. بعد به همراه همان بانوی جوان به اتاقی راهنمایی می شود که پر از صندوق های انباشته از سکه طلا بود. سپس بانوی جوان به برادرم میگوید برو چند نفر را از خیابان به همراه خود بیاورد تا این صندوق را با خود ببریم. برادر من برای این منظور از خانه بیرون میآید و مدتی طول می کشد تا ده نفر را همراه خود به خانه میآورد وقتی می بیند در خانه باز است که می کند؟ داخل خانه می رود می بیند که خبری از بانو و سندوهای طلا می فهمد که این بار هم گول خورده است برادرم شب را در همان خانه استراحت می کند اما همسایه که به رفت برادرم و ده بار که او به آن خانه آورده بود مشکوک می شدند به قاضی خبر می دهند فردانی آن شب 20 تن معمولین قاضی برادرم را به حضور او می برند. برادرم تمام ماجرا را شرف می دهند. و قاضی هم او را مجازاتی نمی کند و رها میسازد. اما در طول راه بازگشت به خانه خود راهزنان برادرم را لخت می کنند و او اوریان با یک زیر شرواری به خانه من می من برای او لباس نو خریدم و او را مانند سایر برادرانم زیر سرپرستی و نگهداری خود قرار دادم. سرگذشت ششمین برادر مرد سلمانی مرد سلمانی لب سخن گشود و گفت چشمین برادرم چکاوک نام دارد او بعد از مرگ پدر یکصد درهم میراسی پدری را در کمال تدبیر و دقت در امور بازرگانی به کار برد و آن را به تدریج افزایش داد اما سرانجام با شکست روبرو شد و آنچه را سود کرده بود به اضافه ی میراس پدری از دست داد و توهی دست کردید. اما برادرم سعی میکرد با آشنا کردن خود با خدمتکاران و نگهبانان خانه های بزرگان و عیان شهر خود را به آنها نزدیک کند و از نظر مالی از آنها یاری گیرد حضور خانه بسیار با شکوهی میرسد و میبیند نگهبانان و افسران بسیاری در قسمت ورودی خانه ایستادهاند و کشیک میدهند برادرم از آنها میپرسد این قصر زیبا مال چه کسی است آنها جواب میدهند اینجا خانه جعفر برمکی وزیر است که به سخاوت و جوانمردی شهرت دارد برادرم از یکی از افسران وزیر که در آنجا بوده است درخواست کمک می او به برادرم می گوید تو میتیم به اندرون قصد داخل شوید و خودت از وزیر درخواست کنید که به تو کمک کند. برادرم تشکر می کند و داخل قصد می شود. از زیبایی شکوه ساختمان و بزرگی باغ و بناهای متعدد و خیابان بندی های آن غرق حیرت می شود تا اق به بنای شاهانه می‌رسد و وارد ساختمان می شود. مرد با وقاری را می بیند که در تالار نشسته و لباس زربست زیبایی پیکر او را آراسته است. سلام می کند. آن مرد برمکی وزیر بوده است که به برادرم خوش آمد می و نیازش را می پرسد. برادرم از وزیر تقوضایی همراهی می کند و می گوید است. آنگاه وزیر خوشرویی و محبانی به او نشان دهد و می گوید الان دستور می غذا حاضر کنند. برادرم خوشحال می شود سپس وزیر بانگ برمی آورد برای ما آفتابه آبالگن بیاورید. بعد از یک دسته وزیر دستهای خود را به حالتی درمی آورد که مشغول شستن دستها برای غذا خوردن است. بعد از برادرم می خواهد که او هم دستهایش بشوید. را بشوید. که برادرم نه کاری و نه آفتابه و آبالگن و را می بیند. ولی به تقرید از وزیر دستهای خود را می شوید. تا از خاصه او پیروی کرده باشد. در این هنگام وزیر فریاد می زند غذا بیاورید و بعد از چند لحظه بدون آنکه غذایی آورده باشند وزیر میگوید عجب برهٔ بریانی است بعد به طور خیالی قسمتی از بره را با درست های خود جدا میکند و به دهان خود میگذارد و شروع به جویدن میکند برادرم نیز ناچارا به همین ترتیب عمل میکند وزیر میگوید غذای خوشمزه است آن را دوست داری برادرم میگوید بلی بسیار خوشمزه است. بعد وزیر میگوید بفرمایید بیشتر میل کنید. زمر از این قاز پخته که در سیر و عسل و میخک آن را اند و چاشنی لذیذی هم دارد میل بفرمایید. آشپزهای من مانند ندارند و هیچ آشپز دیگری در این شهر قادر به تهیه غذاهای مانند آشپزهای من نیست. باز برادر من ناچاران تظاهر به خوردن غذاهای خیالی می‌کند. آنگاه وزیر میگوید این... این تیهوی کبابی و این کبطه دوری بسیار خوشمزه زودتر میل کنین که سرد می شود. زمین از این نان مخصوص که از لطیف ترین آردها تهیه شده و هم از تنور در با این پنیر خوشمزه و گردو میل کنید. برادر من به نشانه برداری و انتظار کمک مالی به همان ترتیب از هر کدار مقداری می و تعریف می کند. آنگاه وزیر میگوید: مثل آن شما اشتهایی ندارید، در حالی که به من گفتی تا این دفعه چیزی نخوردی، ای. شاید این غذاهای آخری را دوست نداری. در این صورت از این گوشت شکار بفرمایید که در این زمان نزدیک من گذاشته شده است. برادر من دوباره مانند دفعات گذشته شروع به خوردن می کند. در همین لحظه وزیر می گوید شراب بیاورید. آنگاه جامی برای خود و جام دیگر برای برادرم می ریزد و آن را به او تعارف می کند. برادرم جام را می گیرد و یک آن را می نوشد. بعد وزیر جاب دیگر به دست برادرم میدهد و او هم آنها را می نوشد و از صافی و پاکی شراب تعریف می کند و وزیر هم با دست خود تکیه از گوشت آهو را به دهان برادرم میگذارد. برادرم دهان خود را باز می کند و سر خود را عقب می برد و آن را در دهان خود جای می دهدد از تعاعتش آن تعریف می کند. وزیر میگوید: میدانستم که از آن لذت خواهی برد. سپس برادرم جام دیگری از دست وزیر می‌گیرد و می نوشد و نیروی به بسنی خوراکی‌ها و نوشابه‌ها فقط در سفره وزیر مهیاست و خدا به سفره گستردهتان برکت بیشتری بدهد آنگاه وزیر دستور داد سفره را بچینند و میوه بیاورند بعد از چند لحظه وزیر شروع به خوردن میوه می‌کند و به برادر من هم تعارف می‌کند و باز برادرم به همان ترتیب میوه هم می‌خورد وزیر دوباره چندین جام شراب به برادرم می نوشاند و برادرم میگوید بیش از این قادر به خوردن و نوشیدن نیستم و به کلی مض شدهام و حال خود را نمیفهمم. ولی وزیر میگوید به سلامتی من بنوش و بگو چگونه شرابی است. برادرم ناچارن به سلامتی وزیر می نوشد و از رنگ تم شراب تعریف می کند. وزیر میگوید من شراب های در شدا های خود نگهداری میکنم. تو باید از همه آنها مزه کنی برادرم که تظاهر به مستی می کرده با کلامات اینا مرتبط می گوید من دیگر شراب نمی نوشم زیاده روی کرده ام و دست خود را بالا میبرد برد و سیلی جانانهی بیخ گوش وزیر می نوازد بعد هم سیلی دیگری نسار وزیر می کند به طوری که نزدیک بود وزیر تعادلش را از دست بدهد و روی زمین بغلتد وزیر که انتظاری چنین بیحرمتی را از نووی شخص فقیر نداشته، نهیب میزند که چه کار می‌کنی؟ برادرم پاسخ می‌دهد: ای سرور من، وزیر ازم شما نهایت بزرگواری و محبت را به من نشان دادید. زیرا اجازه فرمودید به خانه شما داخل شوم و بیریا با سخاوتمندان هم از من پذیرایی کردید. ولی من در آغاز به شما عرض کردم شراب نمی‌خورم، می‌ترسم شعورم را از دست بدهم و بی‌حرمتی از من سرزند. و اینک که حالم بهتر شده از شرمندم و هزاران بار از شما پوزش میطلبم. هنوز سخنان برادرم به پایان نیامده بود که وزیر به جای خرشنی شدن با صدای بلند شروع به خندیدن می و میگوید: سالها بود که در انتظار بودم با شخص با شهامتی چونطور روبرو شوم و از این به این آرزو رسیدم بعد برادرم را نوازش میکند و میگوید: از این پس تو به سری نزدیکان من خواهی بود و در همین خانه هم باید زندگی کنی. آنگاه دستوردان صفره گستردند و تمام غذاها و نوشیدنی‌هایی را که نام برده بود و به طور خیالی از آنها خورده بودند به طور واقعی در سوفه گذاشتند و برادرم و وزیر به خوردن و نوشیدن پرداختند و کنیزان زیباروی تمام مدت با لباس‌های گرانبها به خواندن و نواختن مشغول بودند. برادرم در آن لحظات خود را خوشبختترین افراد تصور می‌کرد. بعد از آن که از سر سوفت برخواستند، وزیر یک دست لباس و زر بخش و گرانبها به, به برادرم می‌دهد و زر و زیور بسیار هم به او می‌بخشد. بعد از یکی دو روز وزیر برادرم را به عنوان رئیس تشریفات و سرپرست داخلی قصر خود برمیگزیند و اختیارات کامل به او اعطا می‌کند و برادرم با خوشنودی کامل مدتی 20 سال تمام در خدمت وزیر زندگی کرد تا هنگامی که وزیر به زندگی گفت بعد از سال گذشته وزیر برادرم به زندگی گذشته از بازگشت و با کاروانی برای زیارت خانه خدا عازم شهر مکه شد در راه راهزنان عرب به کاروان حمله بردند و برادرم را اسیر گرفتند برادرم برده سرکرده راهزنان شد و این راهزن در کمال بدرفتاری برادرم را به خدمت خود گرفت و وقتی او تقاضای آزادی خود را کرد با چاقو به او حمله شد و لکه‌ای او را برید و بدین ترتیب برادرم به صورت لب شکری درآمد. این راهزن سنگدل همسری بسیار زیبا داشت که سعی میکرد با مهربانیهای خود نسبت به برادرم از زنج و اصیبونن او بکاهد و گاه, گاه اتفاق میافتاد که راهزن برای چند روزی به خانه نمیآمد. همسر راهزن با کرشمه ها و کوشش های خود سعی میکرد نظر برادرم را به سوی خود جلب سازد ولی برادرم که از عاقبت کار میترسید از او دوری میکرد و روی خوش نشان نمیداد همسر راهزن آشکارا اشق خود را به برادرم اقرار کرد ولی او همچنان به ایستادگی خود ادامه میداد تا اینکه روزی در حضور راهزن به نازو برای برادرم پرداخت و این بار برادرم بدون اینکه آگاه باشد راهزن متوجه اوست با ایما و اشاره پاسخ مثبت داد راهزن که اطمینان یافته بود در قیاب او همسرش با برادرم بازی میکند. بسیار خشبین شد و خود مفصلی به برادرم می زند و او از حال رفته و او را روی شطور میگذارد و با خودش به بیابان میبرد. او را در پای کوه بیاب و علفی رها میکند و دنبال کار خود میرود. اتفاقاً اتفاقا انگو در مسیر کاروانیان به شهر بغداد بوده است و یکی از مسافرین کاروان که من و برادرم را می بعد از ورود به بغداد به من گفت که برادرم در چه محلی افتاده است. من هم ملافاصل سوار بر از به سراغ برادرم رفتم و او را برداشتم و به شهر مراجعت کردم سخنان من به پایان رسید و خلیفه از آن خوشمود شد و گفت واقعا سزاواری که به تو مرد کم حرف لغب داده اند. اما با این وجود فرمان داد که از آن شهر به شهر دیگر بروم و چندین سال در خارج از بغداد سربرم و بعد از فوت خلیفه دوباره به بقداد برگشتم به طوری که شنیدید این همه محبت و راهنمایی به آن جوان حق ناشناس کردم و امروز هم به این مهمانی آمدم که بقیه ماجرا را مشاهده کردید من وقتی فهمیدم که آن جوان از بغداد رفته به دنبال او از شهری به شهری رفتم تا او را در این شهر و در این خانه یافتم متاسفانه با آن خشونت با من رفتار کرد و از این خانه رفت هنگامی که مرد خاطره سرگذشت مرد جوان و مرد سلمانی را به پایان آورد و مرد سلمانی هم سرگذشت خویش را بیان کرد همه متوجه شدیم که مرد جوان بی بیجه او را آدم پر حرف معرفی نکرده. بعد از رفتن مرد جوان همه میهمانان تا هنگام غروب آفتاب مورد پذیرایی قرار گرفتند و به خوردن و نوشیدن پرداختند و در پایان من هم از میهمانی به خانه خودم رفتم. و روز بعد هنگام خیاطی در دکانم متوجه مرد گوش پشت و سازدن زدن او در مقابل دوکانم شدم. او را به خانه خود بردم. و همسرم هم از ساز اون لذت ببرد و بعد سر صفه شام با خوردن ماهی